اینجا خیلی بزرگ و قشنگ است بله در اینجا گلها و درختهای زیادی هست اینجا نوشته گل چی؟ داو... گل داوودی ببین گلهای داوودی رنگهای مختلفی دارد واقعا زیباست سفید، صورتی، زرد، قرمز، نارنجی، گل داوودی یک گل ایرانی است اسم گلهای کوچک چیست؟ اینها هم گل داوودی است بعضی گلهای داوودی بزرگ هستند بعضی کوچک آنجا را ببین گلهای لاله آنجاست آنها گلهای لاله هستند درست است؟ بله اون طرف. گلهای لاله است سفید، قرمز، سورتی، نارنجی، بنفش، آبی اینجا درخت هم هست بله، درخت های میوه هم اینجاست سیب، گیلاس، گلابی، گردوب ایران واقعا بزرگ و ثروتمند است و مثل این گلها زیباست